من بادخورم ملیک مستی نکنم، الا به قده دراز دستی نکنم، دانی قرزم زمی پرستی چه بود، تا همچه تو خویشتن پرستی نکنم. محرم هستی که با تو گویم یکدم، که از اول کار خود چه بود استادم، آدم، مهنت زدی ای سرشتن در گل غم یک چند جهان بخورد و برداشت قدم. ما جای نمازی به لب خوم کردیم، خود را به می لعل چو مردم کردیم، در کوی خرابات مگر بتوان یافت، آن عمر که در سومه ها گم کردیم. مخصوص جمله آفرینش ماییم، در چشم خرد جوهر بینش ماییم، این دایره جهان چو انگشتری است، بی هیچ شکی نخشنگی نش ماییم.